این داستان مؤمما. یکی بود یکی نبود زیر گنبد آبی آسمون شاهزادهای بود که از هیچ چیز به اندازه سفر رفتن اونم با یکی از خدمتکارای وفادارش خوشنود نمیشد. در یکی از سفرها اونها از جنگلی انبوه عبور میکردند و نمی دونستن شب تو چه پناهگاهی اقامت کنند تا اینکه از دور دخترکی و دیدند نزدیک که شدن دیدن اون دختر زیباست. اونو دنبال کردن تا به کلبه کوچیک رسیدند. بعد شاهزاده به دخترک گفت دختر خانم آیا من و خدمتکارم میتونیم و تو کلبه کوچیک شما بگذرونیم؟ اون با لحنی اندوهگین جواب داد البته که میتونین ولی من توصیه میکنم تو این کلبه نمونین. حتی واردم نشین. شاهزاده پرسید آخه چرا؟ دخترک آهی کشید و گفت مادر ناتنی من زن شروریه و از قریبه ها خوشش نمیاد. مسافرا فهمیدن که اونجا خونه زنی جادوگره. ولی از طرف دیگه هوا داشت تاریک و تاریک تر می برای همین برای ترس رو از خودشون دور کردن و وارد خونه شدن. به محض ورود پیر و دیدن که روی یه صندلی دستدار نزدیک آتیش نشسته بود. پیرزن سرشو برگردند و با چشمای قرمز به قریبه نگاه کرد. بعد با لحنی که دوستانه به نظر میرسید گفت شب خیر اونجا دراز بکشین هرقدر دلتون میخواد بمونین. بعد به زغالها فوت کرد تا چیزی که در ماهیتابه بود بجوشه. دختر از قبل به اونها گوش زد کرده بود که در کلبه چیزی نخورند و ننوشند. چون مادر ناتنیش نوشابه های جادوی درست میکرد. برای همین اون دوتا بدون اینکه چیزی بخورن تمام شب آروم خوابیدن تا صبح شد. صبح شاهزاده بر اسبش سوار شد و آماده رفتن بود که پیرزن بیرون اومد و صدا زد کمی <تصفيق> صبر کنید برای خدافزی میخوام به شما یه نوشیدنی بدم. وقتی رفت نوشیدنی و بیاره شاهزاده منتظر نموند و حرکت کرد. خدمتکارم با عجله پرید و روی زین اسب نشست که پیرزن بهش رسید. پیرزن با صدای بلند گفت اینو به اربابت بده. در این لحظه ظرف شکست و سم اون روی اسب ریخت. سم آنچنان کشنده بود. اسب و درجا جا کشت. خدمتکار دوون دوون نزد ارباب خودش رفت و ماجرا رو تعریف کرد. اسب مرده بود. اما خدمتکار دلش نمیخواست که زین اونو هم از دست بده. اون که برگشت و برداره دید کلاق سیاهی سرگرم خوردن عصبشه. خدمتکار فکر کرد اونو میکشم و میبرم. اگه چیز بهتری پیدا نکردم همین کلاق برای شاممون بسه. اون کلاقو کشت و با خودش برد. شاهزاده و خدمتکارش بدون اینکه استراحتگاهی پیدا کنند تمام روز و در جنگل به راه خودشون ادامه دادند. بالاخره به قهوه کوچکی رسیدند. وارد اون شدند. در اونجا به اونها جای محقری دادند. خدمتکار کلاغیو که کشته بود به صاحب قهوه داد و گفت برای شام اینو کباب کن. بعض شاهزاده و خدمتکارش در اونجا بدتر از موقعی بودش که در کلبه زن جادوگر بودند. چون اون مخفیگاه دزدان جنایتکارا بود وقتی هوا تاریک شد 12 تا مرد که جهره شرور داشتند قهوه خونه را محاصره کردند تا پولهای دو تا غریبه را بگیرند اما پیش از اینکه دست به شرارت بزنند دور میز غذاخوری نشستن و شروع کردند به خوردن شامی که برای شاهزاده و خدمتکارش آماده شده بود صاحب قهوه خونه و پیرزن جادوگرم به اونها ملحق شدند برای شام سوپ رو در ظرف ریختند که کلاغ و توی اون پخته بودند که حال همشون بد شد و افتادند. کلاغ با خوردن اون اسب مسموم شده بود و اون زهر به دوزا هم اثر کرده بود. شاهزاده و خدمتکار خوشحال شدند. چون کسایی که قضاشون رو بوده بودند در واقع جونشون رو نجات داده بودند. دیگه غیر از دختر صاحب قهوهخونه کسی اونجا نمونده بود. اون دختری امین و درست کار بود و در اعمال خلافکارانه آدمای اونجا نقشی نداشت. دختر همه درهای مخفی رو برای تازه واردا باز کرد و انبوه گنج ها و گنج خونه رو به اونها نشون داد. ولی شاهزاده گفت اون گنج به دختر تعلق داره و اون قصد نداره اونا رو تصاحب کنه. بعد هم به همراه خدمتکارش به سفرشون ادامه دادند. تا همچنان در سفرشون به شهرهای بزرگ می رسیدند. بعد از مدتی طولانی به شهری رسیدند که در اونجا شهزاد خانمی زندگی می کرد که بسیار زیبا و سخت و مغرور بود. اون برای ازدواج خودش شرطی گذاشته بود و گفته بود همسر من کسیه که معمایی رو تحق کنه که شهزاد خانم نتونه جوابش رو پیدا کنه. اما اگه جواب معما رو پیدا می کرد اون وقت سر خواستگار بیچاری از تنش جدا می شد شهازد خانم برای پاسخگویی سه روز مهلت می خواست و چون باهوش و زرنگ بود معمولا قبل از پایان یافتن مهلت جواب معما رو پیدا می کرد. تا اون موقع نه نفر از مردای خردمند و اهل دانش در راه ازدواج با شهازد خانم زیبا چون خودشون را از دست داده بودند. شاهزاده که به همراه خدمتکارش وارد شهر شده بود تحت تاثیر زیبایی شاهزاده خانم تصمیم گرفت مثل دیگران جون خودشو به خطر بندازه اون نزد شاهزاده خانم رفت و معموای خودشو اینطوری مطرح کرد آن کیست که کسی را نمی‌کشد، ولی در عین حال دوازده نفر را کشته. شاهزاده در حیرت فرو رفت اون خیلی فکر کرد ولی به جایی نرسید به کتاب های هم مراجعه کرد ولی نتیجه ای نداشت انگار هوش و ذکابت شاهزاد خانوم به انتها رسیده بود اون تصمیم گرفت از راه های دیگه معما رو حل کنه شاهزاده خانوم به یکی از ندیمه هاش گفت که خودشو در اتاق اون جوان غریب پنهان کنه شاید اون در خواب راه حل معما رو بر زبون بیاره ولی خدمتکار باهوش شاهزاده به نقشه اونها پی برد و خودش در تخت خواب عربابش دراز کشید و وقتی ندیمه که خودشو با شنل پوشونده بود وارد اتاق شد اون شنل ندیمه رو کشید و اون از اتاق بیرون کرد شب بعد شاهزاده خانم ندیمه دیگه رو فرستاد تا بخت خودشو امتحان کنه و در اتاق جوان قریبه گوش بیسته باز هم خدمتکار وفادار شاهزاده اونو شناخت شنلشو گرفت و اون از اتاق بیرون کرد سومین شب شاهزاد خانم که فکر می کرد شاهزاده خودش در تخت خوابش خوابیده خودش وارد اتاق شد اون یک شنل خاکستری تیره به تن داشت و چون آهسته وارد اتاق خواب شده بود تصور می کرد که کسی اونا ندیده چشمای خدمتکار بسته بود شاهزاده خانم نزدیک شد و به امید اینکه جوونم در خواب حرف میزنه شروع کرد به سوال کردن از خدمتکار اما خدمتکار بیدار بود و هوای کار داشت شاهزاده خانم پرسید چه چیزیه که هرگز کسی را نکشته؟ خدمتکار جواب داد کلاقی که گوشت زهرالود عصب مردهای را خورده و مرده شاهزاده ادامه داد پس چه چیزی یا چه کسی دوازده نفر را کشت؟ دوازده طبخ کار کلاق زهرالود را خوردند مسموم شدند و مردند شاه خانم که جواب معما رو پیدا کرده بود خواست از اتاق خارج بشه ولی خدمتکار چنگ زد و شنل اونو محکم کشید. شاه به اجبار شنل رها کرد و رفت. صبح روز بعد شاه ساده خانم اعلام کرد که جواب معما رو پیدا کرده و به دنبال دوازده قاضی فرستاد تا در حضور اونها جواب معما رو بگه. اما خدمتکار و اربابش تقاضا کردند که اول اونها صحبت کنند خدمتکار گفت شاهزاده خانم شاهزاده خانم مخفیانه به اتاق خواب ارباب من اومد اون خودش رو پنهان کرده بود و تصور میکرد که ارباب در رخت خوابه در حالی که من به جای ارباب روی تخت دراز کشیده بودم همه این چیزهایی رو که شاهزاده خانم می میدونه از من شنیده اگه این کارو نمیکرد نمیتونست جواب معما رو پیدا کنه قضات حاضر در جلسه گفتند آیا دلیل و مدرکی داری که بتونی ادعای خودتو ثابت کنی؟ خدمتکار رفت و ستو شنلی و که در طی سه شب از سر ندیمه های خانم کشیده بود به قضات نشون داد و توضیح داد که اونها رو چگونه به چنگ آورده. به محض اینکه که قضات چشمشون به شنل خاکستری رنگ افتاد فهمیدن که این شنل مال شاهزاده خانمه که معمولا اونو می پوشید. بعد گفتند. سارین این شنل به طلا و جواهر مزین بشه و شاهزاده خانم اونو به عنوان لباس عروسی در جشن ازدواجش بتن کنه اما بعد از همه اینها شاهزاده ما از ازدواج با شاهزاده خانم منصرف شد که البته جای تعجب هم نداشت کانال تلگرامی هزار افسان داستان های ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی نقطه می سلش مهران دوستی تی نشانی وبلاگ ما s t i نوکت b مهران دوستی .dot کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد استانی